حکایت یکی را از حکما شنیدم که میگفت هرگز کسی به جهد خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند سخن را سراستی خردمند و بون میاور سخن در میان سخن خداوند تدبیر و فرهنگ هوش نگوید سخن تا نبیند خمو